بخش 26 فرداش که از بلند شدم یک ضرب رفتم پی الیاس شیش. به خاطر اینکه در سرتاسر قلعه مرقی توی پخش شیشه حرف اول را میزند بهش الیاس 6 میگویند وگرنه خیلی قبلترها که کللا دنبال کاروکاسبی نبود اسمش الیاس رشتی بود که انصافاً چقدر هم بیشتر برازندش بود. یک موتور وسپای سفید دارد که خدا میداند حالا چقدر به دردش خورده است. دو سه بار هم پشت همین موتور توی چنگال قانون گیر کرده ولی هنوز هم کس دارد ازش سواری می گیرد. الیاس توی محل تنها کسی نیست که موتور دارد ولی دستکم برای من تنها کسی است که میشود موتورش را به راحتی ازش قرض کرد حوضش من هم هر وقت که الرییاس در مغازه من ساندویچ میخورد هواش را دارم اساس مجنی بگیر تا نان اضافه تو هرچی. او این که من هنوز تصمیم جدی برای معتاد شدن ندارم ولی این روز برایم روشن است که اگر روزی روزگاری کارم پیششک گیر باشد او هم بهم جنسم مفتکی میدهد اما الان فقط گاه وقتی موتش را هممانت میگیرم که رفاقتمان رفته رفته فراموش نشود. باش که صحبت کردم از زندان تعریف میکرد. هفته پیش آزاد شده بود و اینکه به خاطر شرایط پدر در بیار زندان توبه کار شده و دیگر خوش ندارد گردشیش و این کوفت و زهره ماری ها به پله کرد. با اینکه همه ای محل پشت سرش میگفتند توبه گرگ مرگ است، اما بالا بروید، پایین بیایید، من آن روز برق پشیمانی را تایی چشمانش دیدم. پشیمانی برق خاصی دارد که با چشم غیر مسلح هم می تواندید. از من به شما گفتن. باید به هر کسی که ادعا می کند تا به کار شده روی خوش نشند. حاجی نعمتی می گوید که خود خدا هم با بندهاش همین کار را میکند. از خدا بزرگتر که نداریم. شاید حدود یک ساعت الیاس را جلوی در خانهشان به حرف گرفتم اما نمیدانم چرا هر وقت غیر مستقیم صحبت موتور را پیش میکشیدم بحث رو فوری عوض میکرد کرد سراخر گفتم موتور واسه امروز میخوام داشت. امروز که نمیشه را دستم نیست چرا نمیشه؟ من امروز حتما باید روی این موتور باشم مسالی مرگ زندگیه موتور خرابه واسه بدمش تعمیر خب بده ببرم بیارم بعد تو بده تعمیر بگم لازمش دارم خندید و گفت با زیدت قرار داری؟ خودم اصلا از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم در واقع من فقط با لاله قرار داشتم و این وصله ها به من نمی چسبید گفتم نه تو بده من برم بیام بهت میگم نمیشه جور داداش موتور سوپاپ ترسونده فردا بیا ببرش گفتم که امروز نمیشه آمدم دوباره بهش التماس کنم که خوشبختانه نیاز نشد مادر الیاس از توی خانه سلاشد مثل اینکه پای تلفن کارش داشتند به محض اینکه شرش رو کم کرد پریدم توی حیات و موتور را پیچاندم الیاس کلاه ایمنی از این ها هم دارد که از نظر زیبایی شناسی گیهن میزند به قیافه آدم اما از نظر امنیتی باید آن را هم کار میگرفتم چون موتورش کارت ندارد من هم که گواهی نامه نداشتم اگر کلو هم نمی‌گذاشتم که گیر افتادنم ردخور نداشت موتور کلاه رو برداشتم و زدم به چاک جاده. تا قبل از آن هیچ وقت هیچ وقت از این شوخی با الیاس نداشتم. ولی باید دانست که گاهی شرایط آدم رو مجبور به درد های این شکلی می‌کنه. ساعت نزدیکی های دوازده شده بود. اما دوازده کی دو کی. با اون موتور علیه سلام هم که نمیشد رفت خانه. گاوه پیشانی سفید محل می عوضش سر خر را کش کردم طرف پمپ بنزین. موتور مثل ماشین نیست اگر کسی موتور کسی را امانت گرفت میتواند با خیال راحت باکش را پر کند یک باک پر وصفا میکنه 400 تومان یک لیتر بنزین زدم دو لیتر دیگر هم جا داشت ولی کار را ادامه ندادم تایی جیبم را میتکاندم همش دو هزار تومان بود که باید استابه رسونش میکردم دو رسیدم گمرک هنوز ظهر بود ولی پشت موتور داشتم مثل بید میدرزی حالا اگر قرار را برای ساعت‌های 7:8 قرور گذاشته بودم که همونجا پشت موتور دومم سیخ می‌شد و خلاص حالا که خوب فکر می‌کنم می‌بینم من جدی جدی طاقت را ندارم لباس قرمزام رو پوشیده بودم با آن شلوار جینه را که گفتم فرقی با آن یکی شلوارم ندارد اگر حسن آنجور کولی بازی در نیاورده بود قصدشم کفش قهوهی هاش را هم ازش بگیرم چون که حسن هنوز آن کفش‌ها را جلوی لال رو نکرده بود و می‌شد باهاش مانور خوبی می‌داد کمی از دو رد شده بود که از توی آینه لاله را دیدم که داشت به سمت آمد با همان لباسایی که روز اول پوشیده بود جز اینکه این سری به جای کتانی صندل پوشیده بود از این برق برقی ها من همیشه زنها رو جز آدم حساب کردم و از تمام کسانی هم که در طول تاریخ به این بیچاره ها کرده اند جدا دلگیرم حتی به خاطر بلایی که بابام به سر مادرم آورده است ممکن است روزی بخواهم ازور یک انجمن دفاع از آزادی زنان یا مبارزه با کودک آزاری بشوم اما اینکه این جماعت جنس لطیفند با یک مسیریش هم به هم نمیچسپند لطافت که فقط به نازکی صدا و این چیزها نیست مردها توی سیاه زمستان یک جفت جوراب هولهای میپوشند هر دو پاشان را هم توی چکمهای پوتینی چیزی میتپانند تازه بید بید می درزند. عوظش خدا برکت به این زنها بدهد توی سرمایه چهل درجه با یک کفش پاشن سنناری و جوراب شیشهی راه میافتن خیابانها رو گز میکنند. توی آینه داشتم لاله را میسکیدم اما جوری تا کردم که انگار شطور دیدی ندیدی. آرام آرام از پشت به نزدیک شده یک مرتبه جلو پرید و گفت. سلام. به خیالش قافل گیرم کرده است. سرم را بلند کردم و به حالتی که انگار منتظر کسی دیگری بوده باشم گفتم. ا سلام تویی؟ چطوری؟ من این ها رو خیلی خوب در درمیآورم. استادم گفت: خوبم. با موتور عباس بهم برخورد. از پیاده آمدن که بهتر بود. گفتم: آره میدونی ماره کیه؟ مال الیاسه. الیاس شیش. الیاس دیگه کیه؟ از اون کاسبای بنام محله. یه قلعه مرغیه و یه الیاس. کاسب چیه؟ کاسبه. کاسبی به تنهایی اسم یک شغل مستقل است ولی متاسفانه لاله این را نمیدانست. من هم پیش را نگرفتم. لاله گفت عجب، حالا سواری چجوره؟ انگار میخواهد سوار کول خودم بشود. گفتم نه ترست، دست فرمونم خوبه. هیچ دختر عاقلی با این حرفا دلگرم نمی شود. اما چون چاره دیگری نداشت، مجبور بود که سوار شود. گفتم کجا بریم؟ اول بریم یه جا نهار بخوریم حتی نپرسید باش چه کار دارم دوباره پرسیدم کجا بریم؟ یه رستوران سنتی جایی آبگوشت و اینا؟ آره آبگوشت و چایی و غیلون و مخلفات و اینجور چیزا اولش باورم نشد پرسیدم مطمئن؟ از چی؟ از اینکه میخوای همچه جایی بریم آره مگه چیه؟ تنها جایی که با این مشخصات میشناختم شناختم قهفه خانه از خارجی بود وسط میدان میوه و تره بار عبدالعباد گفتم بشیم بریم یه جای خوب برادم پاتاها خودمونه خوبه بریم فقط به یه شرط تا چی باشه مهمون من اوه اوه من روی قضیه چیپس و پنیره آن روز حساب ای باز کرده بودم حتی فکر اینکه خدای ناکرده بخوام لاله را مهمان کنم توی کلم راه نداده بودم گفتم آخه اینطوری که نمیشه چرا خوبم میشه صدام را توی گلوم انداختم و گفتم آخه زنجما جلو من دست تو جیبش نمیکنه پوسخندی زد و جواب داد لابد واست اف داره نه خیلی واضح داشت دستم میانداخت گفتم آخه امروز من ازت خواستم که بیای میدونی یعنی من کارت داشتم. و همان پوسخندی که از جمله قبل براش باقی مانده بود گفت دفعه دفعهای بعد. اگر کسی اهل اشاره باشد میداند که این جمله آخریش از آن عزیزم عزیزمی که همیشه میگفت بیشتر آدم را بیچاره میکند من هم دیگر اصرار نکردم چون الان سالهای سال است که این تعارفات شاه عبدالعظیمی آمد نیامد دارد و من با یک دو هزار تومانی مچاله اصلا آمادگی نیامدش را نداشتم. با چه بدبختی سوار شد. ویسپا را جوری ساختن که خانمهایی که برای خودشان شخصیتی چیزی دست و پا کرده اند، موقع سوار شدن به بد روزی می افتن. این مسئله مربوط به قلام بودن اقوه اینجور موتور البته لازم نیست فکری اساسی راجع بهش بشود چون رفته رفته هم سر و شکل موتورها دارد تغییر میکند هم سر و شکل خانم ها راه افتادم عین سگ ترسیده بود ولی داش عشق دنیا را میکرد معلوم بود به عمرش ترک موتور هیچ خریدانش ننشسته است اگر میخواستم می توانستم با چندتا تا ویراج را رو بترکانم اما عقده بازی در نیاوردم. حتی یک بار موقعیتش پیش آمد که از وسط دوتا اتوبوس به چه بزرگی لایی بکشم که خود به خود منصرف شدم. در واقع میخواستم شخصیتم را برای روز مبادا حفظ کنم. شخصیت آخرین چیزی است که باید جلوی دخترها از دست داد. این حرفا عین حقیقت است. داخل میدان میوه و تره بار درست جلوی قهوخانه از خارجی ترمز زدم. لاله وقتی احساس کرد که دیگر قصد ادامه مسیر ندارم گفت: رسیدیم اینجاست؟ فکرش رو هم نمیکرد اقلم به اینجا قد داده باشد گفتم بله معرفی میکنم قهوه خونه از خراغا پاتاق ماست گفتم پاتاق ماست برکه درش گرستر بشود ولی اثر نکرد سوار شدنه هم دو دل بود اما نه این همه چه میدانم؟ حتی شاید فکرش تا تلکه کردن و آزار اذیت جنسی هم رفته باشد حرفی که نزد ولی جوری از موتور پیاده شد که اگر میخواست چیزی بگوید حتما میگفت الهی با امید تو اما آن جورها هم نبود که اگر بار گران بودیم رفتیم به خانه. جلوی در ورودی وایستدم که اول او وارد شود. داخل قهف خانه بوی قریان کاشان و خانسار با آن زغال های سینه کفتری آدم را ملنگ میکرد. هیچ وقت آبم و قریان های توی یک جوب نرفته است اگر کسی پیزیش را ندارد که کاشان بکشد اصلا نباید گرده دود و دم بپله دو سیب و نعنا دیگر چه سیقه است. همه چیز اصلش خوب است. حالم از این آدمهایی که معشیر لیمویی میخرم می, می, خورن، می خورن، به هم میخورد ماشهیر را مثل قهوه باید تلخ, تلخ خورد الان مدت هاست که اینجوری فکر می کنم. قیافه لاله شده بود که حتی الان هم نمیدانم تعجب کرده بود یا ترسیده بود. مثل این که وسط یک میدان مین باشد خیلی نرم و با احتیاط قدم برمیداشت کافی بود پشت سرش پقی صدا کنم که دو پا دارد هشت تا قرض و دف فرار گفت اینجا کجاست باز؟ اگر جوابش را میدادم که ندادم دفعه سوم و چهارم میشد روی یکی از نیمکت‌های یک سرای داخل مغازه نشستیم. دود سیگار و قلیان همه فضای قهوه‌خانه را پر کرده بود طبیعت دود طوری است که خود به خودایی بالا میرود. مزه همین هم است که از سقف مغازه اسغر لجن میبارد. اما اگر صد بار دیگر هم بدون لالا آنجا میرفتم متوجه این موضوع شدم. توی کف سقف بودم که خود اسغر با یک قریانه دو شلنگه از پشت یخچال بیرون آمد داشت قلیان را برای دو تا از مشتری ها می چاقید. چشمم که به قد و بالای اسغر افتاد تازه یادم افتاد راجع به این موضوع که یک پای اصغر چوبی است توضیحی به لاله ندادم. سیخکی نشست. لاله را میگویم. پای چوبی را دید سیخکی نشست. ماتش برده بود. دختر دستی دستی داشت پس میافتاد. از غر در جوانی آدم قالتاقی بوده. یک ایران و توران ازش حساب میبردند. آن هم که میگویند یک پایش را در جریان یک دعوای ناموسی از دست میدهد. کارش آنقدر بالا گرفته بوده که حتی توی قفقاز شوروی هم یک مورد سابقه شرارت و زندان دارد. به همین دلیل هم است که بهش اسقر خارجی میگویند غیر از یک پرونده اقدام به قتل که در جوانی ازش تبرئه شده، هیچ سابقه آدم کشی دیگری ندارد. خلاصه سینه سوخته و حبسی کشیده است. حالا هم رفته رفته توبه کار شده و برای خودش کار و کاسبی را انداخته است. معتمد به که نیست، ولی آنجور ها هم نیست که لازم باشد کسی از چنگش فرار کند. نباید گول ظاهر افراد را خورد. هر کسی که یک پایش چوبی است، حتما نباید دزد دریایی بوده باشد. همه اینها رو بدون یک واو این طرف و آن طرف به لاله گفتم. بدتر شد که بهتر نشد. به قرآن قسم من هم راضی نبودم پای دختر مردم به این جو جاها باز شود. ولی در نظر بگیرید که تمام نشانیهایی که خودش به هم داده بود به همین جا می‌خورد. هم سنتی بود، هم قلیان و چای آبگوشت و مخلفات داشت. این چیزها را که توی بقالی به آدم نمی‌دهند. شاگرد اسغر بالای میز ما آمد تخمهجن دستکم تا استکان کمرباریک را روی دوتا دستش بلند کرده بود و واللاه کم هنری نیست آدم یکیش رو بلند کند تا به مقصد نرسیده نصفش میریزد روی زمین حالا این یارو این کار را میکرد کار بود دوتا استکان جلوی منو لاله گذاشت و رفت همه داشتن زیرچشمی های ما رو چوب میزدند زیرچشمی بیشتر یک اصطلاح است وگرنه بعضیهاشان حتی چهار چشمی به ما زده بودند با نگاهشون که مشکلی نداشتم در واقع آن حرفهایی که داشتن توی دلشان به لاله می زدن داشت حالم را خراب می کرد دختر را آورده بودم وسط یک مشت جوال نقع وزی بیشتر از آن نمیشد تحمل کرد گفتم می بریم بیرون؟ بریم یه جای دیگه جا, جا سرش را به طرف من گرفت و گفت چی میگی؟ میگم اگه میتونیم می بریم یه جای دیگه آره آره بریم پیشنهاد من چیزی نبود که توی آن شرایط باش مخالفتی بکند. اگر پول چایی را لاله میداد معلوم نبود نهار پای کی باشد. برای همین مجبور شدم پول چای را خودم اخ کنم. سیصد تومان رو تو خورش کارش. پای موتور که رفتیم نگذاشت نبرداشت. گفت: تو چی فکر کردی من آوردی اینجا عباس؟ اصلاش من راجع بهش فکر نکرده بودم. گفتم: خودت گفتی بیایم اینجا. من تا ازت پرسیدم یادت که نرفته از این حرفم خیلی شاکی شد من؟ من گفتم؟ آره که گفتی چایی و غیلیون و... نگذاشت حرفم سر و سامان بگیرد اینجا آخه اینجا هم تو میای؟ من فقط همینجا رو بردم پاتوقمون به پرس. خوش نداشتم بی خودی سر بگیرد چون من از اینکه وسط خیابان دستم را روی زن زنجماه دراز کنم متنفرم بهش گفتم خب هر جا تو میگی بریم ولی من از, از سوال کردم راله. گفتی بریم یه جایی که بشیم بریم کجا دوباره بشیم میگم دوباره راه افتادیم از اینکه ماجرا این شکلی پیشرفته بود اوقاتم حسابی ترخ بود ولی شرمنده ای چیزی نبود وقتی کسی نمیتواند هر جایی برود یا باید کنج خانه بماند که گیسش رنگ دندانش سفید شود یا حداقل خودش یک جایی را پیشنهاد کند که دیگران هم به این دردسر نیفتند. وانگ از از زیر چشم نگاه کردن خلق الله هم برای اولین بار بود که پیش می آمد. من هزار دفعه دیگر همانجا رفته بودم. سابقه نداشت احدالناسی آنجور به من زوال بزند. کمی جلوتر که رفتیم داد زدم کجا باید برم؟ داد نزدم چون توپم پر بود. داد دادم چون پشت موتور صدا به صدا نمی رسد. برو ونک، اونجا یه قهوه سنتی داره. سنتی؟ انگار همینجا که رفته بودیم خیلی مدرن بود. دوباره داد کشیدم. میخوای بریم کبابی جایی؟ هان؟ میخوای بریم کبابی جایی؟ نواسه چی؟ هان؟ میگم نواسه چی؟ اعتبار نداره دیدی که نمیشنوم میگم اعتبار نداره نه اینجا فرق میکنه حرف زدن پشت موتور مادر آدم رو وضایش می برای همین دیگر جوابش رو ندادم جلوی در قهوه خانه که رسیدیم تازه هم افتاد که اصل قضیه از چه قرار است به عمرم همچون چیزی ندیده بودم اگر سنتی رو در برابر مدرن حساب کنید، محال است تا حالا از قهوه خانه خارجی چیز سنتی تری کشف شده باشد. و من از این لحاظ انتخاب خوبی کرده بودم. اما این را از من داشته باشید که سنتی دو جور می شود. یک سنتی مدرن داریم با یک سنتی سنتی. و منظور اکثر این جوانک از سنتی سنتی مدرن است، نه سنتی سنتی. درست دم در یک فواره کارکاساشته بودند با یک مشعل بزرگ که توی روز روشن برای خودش میسوخت. یک یارویی هم با لباس های ترمه همانجا سیخکی کاشته بودند که جلوی ملت دلار راست بشود. شاد خیال میکردن با این کارها دل مردم را بیشتر به دست می آورند. توی مغازه که دیگر برای خودش حکایتی بود. دور تا دور تخچیده بودند. روی تختها هم یکی چند تا ترکمن بغل به بغل تکیه داده بودند که آدم را بیشتر به یاد روزهای خوب از دست رفته بیاندازد. درست وسط مغازهم یک حاض فیوز بود که توش مجسمه یک زن لخت و پتی کار گذاشته بودند که از دهن زنی که یک بند آب بیرون میریخت حرف اح من این است که توی یک محیط خانوادگی جای این مسخر بازی هاست نیر از این هم کلی زلم زینبو از سقف و دیوارها و اینورآور آویزان بود که اقلا نصفش سنتی نبود یک عکس به چه بزرگی از تختی خدا بیامرز روی دیوار رو به در گذاشته بودند که الحق و الانصاف یک خورده کوچکترش توی مغازه اسخر هم بود حالا من بودم که مثل پپه ها در و دیوار را می پاییدم چیزی که فهمیدم این است که وقتی یک آدم یک اکلاقبا بدون مقدمه توی جایی با کلاس گیر بیفتد همانقدر مسخره است که یک آدم با کلاس وسط جایی درباد آقا بیفتد. که من در عرض نیم ساعت هر دوش را با همین جفت چشمهای خودم دیده بودم. آدم ها همیشه باید توی محل خودشان رستوران بروند. هر وقت پایم را از قلع مرغی بیرون گذاشتم مثل سگ پشیمان شدم. هرچند هیچکس کس تا حالا یک سگ پشیمان ندیده است ولی خب این هم برای خودش مثالی است. قهف خانه دلباز نبود ولی عوضش خیلی شیک و پیک بود. چند تا جوان با لباسهای یک یکدست قزمی تو نمدی مدام لالوی جمعیت میلولیدن. غیر از یک تخت دوازده نفری همه جاش قلقاله بود به لاله گفتم بریم اونجا بشینیم اون تای تا. توجه می کنید که چه بی خودی به زدم اول لاله روی تخت نشست و بعدش من درست روبروش به پشتی تکیه زدم اینم جا بود که من رفتم نشستم از لحاظ سوق جیشی بی خاصیت ترین جایی بود که روی یک تخت دوازده نفره می شود تلب شد تخت اینقدر بزرگ بود که اگر هر جفتمان تا ته کش میآمدیم شاید به زور نوک انگشت پایمان به هم میماسید. من کله پوک همیشه همینطوری هستم. هاردپورتم زیاد است اما پای عمل که میرسد مثل ببو گلابی ها جا میزنم. بعدش واسه هرکی هم که تعریف میکنم میگوید خاک تو سرت. به قرآن اگر خود حاجی نعمتی هم به جای من بود آنجا که من نشسته بودم نمی نشست. آخرش این خجالتی بودانم یک روز را رو میکشند. به بهانه اینکه که دستم را بشویم بلند شدم وقتی برگشتم کمی نزدیکتر نشستم اما اگر اش را برای تا بکشم میبینید که باز هم آنچنان فرقی نکرد لاله به هم گفت چی میخورید قربان؟ آرام آرام داشت لوس بازی هایش را شروع میکرد گفتم قلیون قلیون کاشون منظورم این بود که در حال حاضر به قلیان احتیاج دارم و نمیخواهم برای این نهار زحمت بدهم اما لاله این را نفهمید گفت. قیلیون میخوری؟ نه یعنی میگم الان نمیتونم نهار بخورم تارف میکنی؟ اگر میگفتم تارفی در کار نیست و اتفاقا در تصمیمم خیلی هم جدیه هم ممکن بود مسئله نهار جلو چشمم نیست و نابود شود برای همین گفتم مهمون خیلی سابخونه است هرچی تو بخوری منم یه مزه مزهی میکنم از لحاظ گوارشی بدنم جوری عمل میکند که هیچ وقت خدا سیرمونی ندارم آقا جون بعضی وقتا به هم میگوید مثل سگ حسندله همیشه فکت میجنبه این مسئله مربوط به و ساز بدن است ولی پیرمد مرد ازش هیچ سر در نمیآورد لاله گفت اینجا دیزیایی خوبی داره بخوریم برای اینکه حرفم دوتا نشده باشد سری تکان دادم غذاهای گرانتری هم داشت ولی همانشم هم از سرم زیاد بود توی فاصلهای که گارسان سراغمان بیاید لاله شروع کرد با موبایل ور رفتن من هم چون بیکار مانده بودم دوباره به لاله نگاه کردم اما واجدان کار کار درستی نبود روی همین اصل چند ثانیه یک طرف دیگر را ساکیدم ولی دوباره روز از نو روزی از نو کارش که با موبایل تمام شد سرش را بالا گرفت و من مجبور شدم دوباره چشمم را درویش کنم انگار نه انگار. سعی می کردم حواسم به کارهام باشد ولی اینجور جور کارها چیزی نیست که بشود تا ابد قایمش کرد لاله هم که فهمیده بود چه مرگم شده خودش پا پیش کذاشت خب میشنوم انگار ازش پرسیده باشم کری یا نه گفتم چیو؟ حرفها تو گفته بودی کارم داری جوری که خیال کند حال کردهم با منمن گفتم هیچی یعنی من دخترها عاشقی اینن که یکی جلوشان به منمن میافتد حرف تو بزن پناه بر خدا من چه حرفی داشتم که به او بزنم گفتم میخوام یه حرفای خوبی بهت بزنم شاید خوشت بیاد یا نه ولی همش در مورد حرفایی که باید بدونی باید به هر قیمتی شده در جریانش باشی اونم همه امروز میفهمی که چی دارم بهت میگم نه گفت نه یک کلام ختم کلام گفتم ببین من در اصل مورد چیزهایی اینجا اومدم که از لحاظ روحی برای من و تو مهمه اگه بهت بگم شاید پیش خود خیال کنی که این چیزها اصلا مهم نیست ولی من شخصا بهت اطمینون میدم که بی اندازه مهمه باید درک کنی از نظر روانی دارم میگم. قیافش یک جور خاصی شد که نمیتوانم بگویم چه جوری چیز خیلی پیچیده ای هم نیست. تمام کسانی که در طول تاریخ چیزی را نفهمیدن، بعدش تقریبا همین شکلی شدهاند. ادامه دادم. ببین فرض کن من و تو الان اینجا نیستیم. خب؟ خب. پس در این صورت چی باعث میشه که الان دو نفر بخوان اینجا باشن؟ دارم در مورد نیازهای اصلی انسانیت در جریان زندگی حرف میزنم. منظورم بیشتر یه حالت خاصیه که شاید توی یکی دو جلسه نشه توضیحش داد. میدونی؟ نمیدانم با این وضع حرف زدنی که در پیش گرفته بودم چه اصراری بود که حالات درونیام را تشریح کنم. راه درستش این بود که خفه بشم که شدم لاله هم دیگر دنبالش را نگرفت عوضش یک نگاهی به بیرون انداخت و گفت داره بارون میاد از جایی که من نشسته بودم بهتر میشد خیابان را دید چون بین لاله و در خروجی یک ستون بود قد و الاق گفتم آره مثل اینکه تا اینجایی که, که میشد گردنش را کش داد و سعی کرد خودش یک نگاهی به بیرون بیاندازد نفهمیدم چیزی دید یا نه گفت عجیبه تا ده دقیقه پیش هوا خیلی ابری هم نبود آره و آبا هوای تیرون مثل و آبا هوای لندنه هر ساعت یه جوریه این را که نگفتم مثل این دنگ و دیوان ها ریسه رفت اگر به جای لندن اسم هر جهنم دره دیگری را گفته بودم این همه نمیخندید هنوز هم که هست درست حالی نشدم که داشت به من میخندید یا لندن وقتی هم که میخندید زیر قبقبش چین میافتم اگر من جای او بودم سعی میکرم با آن وضعیت چانه و غب کمتر از تاید دل بخندم. گفتم جدی گفتم هوای لندن بیشتر سال ابریه چندان تغییر نکرد. بازداش میخندید. یکی از بیش ها برای گرفتن سفارش آمد. روزتون به خیر. به رستوران سنتی ما خوش اومدین. لیست غذا رو دست لاله داد. چقدرم مسخره حرف میسه. صدای یارو جوری بود که اگر بخواید بدانید باید دندانهایتان را رو روی هم فشار دهید و زبانتان را با سقه دهان درگیر کنید. صدایش همچه شکلی بود. وضعیت لباسهاش هم چنگی به دل نمیزد. توی همه رستورانها رسطورانها رو یک اندازه میزند. این یارو عوضش اینقدر دیلاق بود که شلوارش به تنش زار میزد. لاله گفت چی میخوری عباس جان؟ با اینکه از ظهر به این طرف چند مرتبه سر دیزی و مخلفات با هم به توافق رسیده بودیم ولی نمیدانم چرا دلش آرام نمی گرفت هر چند دقیقه یک بار همین سؤال را می پرسید گفتم همون دیزی خوبه با قلیون یارو پرسید قلیونتون چی باشه؟ گفتم کاشون گفت نداریم متاسفانه گفتم پس خانسار بیار گفت نداریم فقط قلیون میوهای موجود داریم قیافم را تو هم کشیدم لاله گفت میوهای نمیکشی اهلش نیستم حالا این یه دفعه را سخت نگیر نعن و پرتقال بگیرم در جواب لوچم را تا جایی که میشد بیرون کشیدم که در اصل نوعی تایید به حساب میآید لاله گفت یه نعن و پرتقال فقط یه لطفی بکنی قلیون اول بیارین یارو سفارش را گرفت و رفت وقتم بیخودی داشت از دست میرفت بعد بالاخره از یک جایی سر بحث را باز میکردم وگرنه نه اگر پام را از در بیرون میگذاشتم تا عبدال آباد خودم را رو نمیبخشیدم روی همین است توی دلم تا هشتاد شمردم و یک مرتبه بی و رو در ایستی گفتم چند سال اطلاله با اینکه این سال را قبلا هم توی کافه شاب ازش پرسیده بودم ولی هم جا خورد فقط فرقش این بود که اینجا دوباره حالم را نگرفت گفت بیست دو. دو. حالا شیرین بیست و شش هفت را داشت ولی دوستش بگوید بیست و دو اگر راستش را گفته بود حتما بهش می میگفتم قدرتی خدا چقد خوب مانده و اینکه اصلا بهش اش نمیخورد ادامه داد میخوره چند سالم باشه این سال را باید قبل از اینکه سنش را اعلام کند میپرسید گفتم همین حدودا بیست بیست و یکی دو عرش را سیر کرد حتی یک درصد احتمال نداد که سر کارش گذاشته باشم همینجور داشت عشق میکرد که یک دفعه موبایلش به خود لرزید پیامک داشته زیرجلکی نگاهش کردم خواند و خندید زیر لب گفت خدا کنه من که به چشم عبرود نمیبینم درست نفهمیدم که خدا چه کار باید بکند. اما حتم داشتم مسئله یک چیزیست بین لالو و خدا و یک نفر دیگر جواب پیامک که رو داد و موبایل رو کناری گذاشت. چیزی نمی گفت. انگار منتظر بود ازش بپرسم کی بهش پیامک داده است اما من لب از لوا نکردم. هیچ از این غیرتی بازی و خوشم نمیآید. زندگی باید در پایه اعتماد متقابل باشد. خیلی نرم تکیاش رو از روی پشتی برداشت و چارزانو نشست دوتا دستش را ضررداری به مچ پاهایش قلاب کرد و گفت من قبلا یه بار ازدواج کردم. هشتده سالم بود که پسرده ایم ازم خواستگاری کرد. بابا ماما موافق نبودند. منم که اغرام نمی رسید. اینگر رفتن و اومدن تا بالاخره زنش شدم. این اعترافات را کرد چون عین روز براش روشن بود که تا در مورد شوهرش نپرسم کرمم نمیخوابد. پرسیدم الان چی؟ الان چی کار میکنی؟ از لحاظ زن و میگم. الانم یه ساله که ازش جدا شدم. یک سال. مطمئن نبودم سر به زنگاه رسیده باشم برای یکی مثل لاله یک سال خودش یک عمر است گفتم: یعنی الان تنهایی تنهایی؟ صورت احمقان ترش این بود که بگویم اگه اجازه بدی تا آخر غلامی می کنم. گفت: آره تنها؟ گفتم یعنی با هیشگی هیچکی دوست نیستی؟ بی جمع بازی رو ببینید یعنی منظورم اینه که نمیخوای ازدواج کنی؟ نه. بعد از ازدواج اولم دیگه به هیچ مردی نتونستم اعتماد کنم. با زبان بی زبانی داشت حالیم میکرد که باید براش جلبه اعتماد کنم. آمدم قسمش بدهم ببینم راست میگوید یا نه که یارو لندوکه قلیان را آورد. همون هم با سینی بین من و لاله گذاشت. لاله شلنگ را از کمر قلیان باز کرد و دست من داد. اگر فکر میکنید این کار را رو از روی معرفت و اینجور چیزها کرد کور خواندید. از بیخ در بند این حرفان نبود. در اصل بیشتر به خاطر این بود که خودش توی هچل نیافتد. چون چند تا پاکی اول قریان آدم را به ریغ میاندازد. تا بخواهد چاق بشود باد میپیچد به پک و پهلوی آدم. خودش هم یک پاکس سیگار از توی کیفش برداشت. ماندم. فکرش رو هم نمیکردم که لاله لال سیگاری باشد. یک نقصیگار بیرون آورد و بدون اینکه و راسته نگاه کند با زغال روی سر قلیان ترتیبش را داد فوری گفتم لاله لاله با قلیون یک پاشا روی آن یکی انداخت و دوباره تکیه داد و گفت دل آدم باید صاف باشه همین فقط گفت دل آدم باید صاف باشه معلوم بود که تو حالا جای سفت راه نرفته است اگر همین کار را جلوی دارو دسته اسقر خارجی می جا به جرقش رو را کف دستش میگذاشتند. آنها هیچ از این غلط کردن خوششان نمیآید و هر جور هم که حساب کنید کاملا حق دارند. یکی دو پاک زد اما هرچه صبر کردم دودش رو حلقه بیرون بدهد نداد. حتی خودم چند کام غلیان رو حلقه ای کردم که خجالتش بری اما و کارگر نیافتداد. زر زده بود به عکس دین شاه روی قلیان و تند و تند به سیگارش پاکهمیق میزد. غلط نکنم می‌خواد که درست و درمان ندادند. پرسیدم، ناراحتت کنم لاله؟ که کاملا برای خود شیرینی بود. گفت، نه، یه لحظه رفتم تو حال هوای اون داران. خاکستر سیگارش را مثل همه زنهای دنیا توی جا سیگاری تکانده گفت. خیانت، خیانت. مرد همشون یه جورن. از یکی که سیر میشن میرن سراغ یکی دیگه. عوضی حالا یا یادش رفته بود که من به عنوان یک مرد آنجا هستم یا روی هم رفته من را داخل آدم حساب نکرده بود یا چی نمیدانم ولی من یکی که به روی خودم نیاوردم. پرسیدم. چرا؟ شلوارش دوتو شده بود؟ نه. پاکه همیغی من که خودم یک پا سیگارییم اگر یکی از آن پاکه بزنم به ترتر میفتم. دودش رو که بیرون فرستاد ادامه داد. با همون یه شلوار همه جور کسافت کاری می کرد. این را که گفت نمیدانم چرا بیخود و بی احساس کردم می توانم بهش نزدیک تر بشدم. همان همانجور نشستنکی به طرفش سریدم. در آن لحظه احساساتم تحریک شده بود و نمی شد به هم ایرادی گرفت. گفتم حالا بچه مچه که به هم نزدی؟ این بهترین سوالی بود که تا آن روز ازش کرده بودم. فیلتر سیگار را توی جا سیگاری له کرد و آهی کشید کنن خیلی آه میکشید و گفت نه بچه هم کجا بود کافی بود یه بچه داشته باشم تا دور برداشتم آره بابا وگرنه الان یکی دیگر رو هم بدبخت کرده بود این رفته بود پی کارش خراب شد سری ادامه دادم ولی هیچ معلوم نیست ازدواج کردی یا جدی میگم دور عشق کرد جدی هم؟ چی میگی؟ تازه بعد از عروسی استخون ترکندم بعد مانتویش رو صاف کرد و به شکمش نگاه کرد نه؟ nah? چاغ نیستم؟ اگر کسی خیال میکند چاغ است حتما هست این سالات دردی رو دبا نمی کند گفتم نه، nah, جای خواهری خیلی هم خوبی اکثراً آدم های هیز و پدر اینطوری حرف میزنن اما آن لحظه حرف بهتری به کلم نخورد دوباره گفتم معتاد که نبود شرف بود؟ نه حالا هرچی که داشت ولی دودی نبود از بچگی که داشت روی این حساب سیگارم لب نمیزد پس تو چرا میکشی؟ من که برانشید ندارم خودش از حرف مسخرش خندش گرفت گفت من تازه شروع کردم معلوم بود حالا حالاها قصد ندارد بی خیال سیگار بشود تازه یخم باز شده بود و قصد داشتم چند تا سال شخصی دیگر ازش بکنم ولی راستش را بخواهید جگرش را نداشتم. کنجکاوی از آن دسته چیزهایی است که اگر دست آدم ناباب بیفتد به سه شماره تبدیل به فضولی می شود. این کارها آدم خودش را میخواهد. من مردش نیستم. تصمیم گرفتم بحث را عوض کنم. گفتم: خیلی خوب کاری کردی اومدی انقدر به دیدن احتیاج داشتم که نگو نپرس. دستش را روی جناق سینه اش گذاشت و نشان داد که داره تعجب کند. گفت به دیدن من هیچ زن دیگری آن حوالی نبود ولی باز دوستش این سال رو از من بکند گفتم آره همش نگران بودم که یه وقت نیای میفهم چی میگم نه که نمیفهمید حالا درست توی شرایطی که من سرخ شده ام دختر خودش را زده بود به خنگی شاید کار درستی نبود ولی به خاطر همین سوالهای مسخرهش مجبور شدم کلی قربان صدقهش بروم. حتی راجع به اینکه چقدر آدم متفاوتی است و اینکه تومانی هفت نار با دخترهای دیگر برای من فرق میکند هم یک چیزهایی سرهم هم کردم. زبان بسته کلی سردماغ شد. اگر را به موقع نیاورده بودند، کم مانده بود بگویم چشمهاش سگ ولگرد دارد و اینکه یک دل نصد دل عاشقش شدهام. مردی که را با قوری برداشته بود توی سینی آورده چای توی سینه کجاش سنتی است؟ شاگرد اسخر آن همه چای رو یک دستی بلند میکند سنتی حساب نیست مال اینها سنتی است؟ داشتم چای را برای خودم توی استکان می ولی تعجب لاله هنوز به نیامده بود. حرفهایی بهزده بودم که یک عاشق سینه چاک هم زیرش میزاییید متاسفانه وقتی کلم داغ می شود متوجه حرفهایی که میزنم نمی گاهی هم مجبور می اینطوری این با احساسات کسی بازی کنم دوباره پرسید آخی چرا؟ چرا من؟ نمی خواست چیزی را در بیاورد یا اینکه بخواهد ببیند راست می گویم یا نه فقط می خواست را از سر نو برایش تکرار کنم دخترها عاشق حرفای عاشقانه دوباره شروع کردم به مجیز گفتن خوشگل کاشتم پسر لول لول شده بود حتی یک جایی بهش گفتم که با همان نگاه اول که به انداخته کارم را ساخته است و الان دیگر هیچ کاری فایده ای ندارد. شرایط جوری است که تقریبا عاشق هر دختری میتوانم بشوم. برای همین اینکه اینجور حرفها را بندی کنم شک برانگیز نیست. از طرفی لاله هم دنباله این نبود که مچ من را باز کند. اگر مدت آشنایی آشناییمان کمی بیشتر بود حتی شاید بهش می گفتم که برای به دست آوردنش دست به همه کاری زدم و حتی به خانوادم پشت کردم. خلاصهش حرفایی زدم که فقط آدمهای خیلی احساساتی یا خیلی هفت خط به کسی میزنند البته قصد من سو استفاده های نبود فقط میخواستم شانسم را امتحان کنم امتحانی که اصلا مجانی نبود همینطور که براش نطخ میکردم دستش را بی هوا به طرفم دراز کرد نزدیک بود حالی به حالی بشوم اما چون راست چشمش به شلنگ قریان بود فرصت هیچ سو تفاهمی پیش نیامد شرنگ رو ازم گرفت و افتاد به جان قلیان. توی صورتش براخ شدم. چیزی نمی گفتم فقط رک رک نگاهش میکردم کردم. برای اینکه همین جور تا آخر به ای بزنم بهانه دستم افتاده بود. و نمیشد شد به هم چیزی گفت. چند پاک که زد سرش رو به سمت من چرخاند. گفت. من که پاک گیج شدم. آره منم. تو دیگه واسه چی؟ همین جوری. ما خانوادگی این شکلی هستیم. بیشتر وقتا پا گیجیم. تو واسه چی گیجی؟ توی هر دو تا لپش بادندخت و فوت کرد. واسه همین چیزایی که گفتی؟ یعنی چی؟ من این همه وسط حرف زدم نکنه بهم شک کردی آره؟ شک کردی؟ نه منظورم اینه که... هیچی برش کن. این هم یک بازیش. وقتی دختری آنجور... دن به حرفش را میخورد یعنی دارد لح لح میزند که التماسش کنید پی حرفش رو بگیرد و اگر پسرها این مسئله را ندانند زیاد گول میخورند گفتم بگو با من راحت باش گفت: هیچی مهم نیست انگار که بقیه حرفاش خیلی مهم بود گفتم بگو لاله امروز باید همه چی روشن بشه این چه طرزی بود که من داشتم حرف میزدم خدا عالم است. یک کام دیگر از قریان گرفت و شلنگ را تحویل من داد نمیدونم واقعا نمیدونم چی بهت بگم زر میزد از من هم بهتر میدانست حالا خودش نیست خداش که هست اگر از روز اول آن همه عزیزم عزیزم به خیکم کم نبسته بود من هم اینجور یابو برم نمیداشت زنها ها هیچ وقت مسئولیت هیچی را تمام و کمال گردن نمیگیرند با این حرفها همیشه یک شریکی چیزی برای خودشان دست پا دیزی رسید. اینقدر دنگ و فنگ و مخلفات دور داشت که اگر کسی پول کافی ردش نبود، میتوانست حسابی وحشت کند. سر یک آبگوش حداقل چهار بار رفتند و آمدند و شما میدانید که این آمد و رفتها چه تأثیر نازنینی روی صورت حساب نهایی میگذارد. لاله بدون اینکه نظر من را بپرسد، از یکی از پیشخدمتها خواست که کلک قلیان را بکند. سفره را هم از دست یارو لندوکه گرفت و مشغول چیدن افتابه لگن شد. باید بودید و قیافهش رو می دیدید. نشان بدهد یکی خورده است اما چون واقعا یکی نخورده بود قیافهش یک جور مسخری از کار درآمده بود. من هم مثل آدم های عاشقی که به تازگی به بومبس رسیدهاند سریدم جلو. تازه آنجا بود که فهمیدم جوراب لاله از روی شست سوراخ است. سوراخ بی ریزی بود ولی اگر خیلی درشتم بود به رویش نمی آوردم. اخلاقی که دارم حتی اگر زیپ کسی هم تا آخر باز باشد محال از کوچکترین تذکری بهش بدهم. به نظرم اینجوری بیشتر خجالت میکشد. به هر حال باید بدانیم که زمان همه چیز را حل می لاله میخواست دیزیها را با یک تکه نان توی کاسه خالی کند. این دیزیهای سنگی هم چیزهای خیلی داغی هست. کسی جفت نباشد انگشت سالم برایش نمی اگر لاله آنجوری توی لب نرفته بود، حتما ازم کمک می گرفت و من چون این را فهمیدم ترجیح دادم دافتربانه به دادش برسم بده من لاله بذارش زمین من واسد میریسم نه لازم نیست بذارش زمین مگه از رو جنازه من ردشی بذارش زمین من کمکت می کنم. از خدا خواسته دیزی رو زمین گذاشت اگر خودم تک تنها آمده بودم یا حداقل اقل حسن به جای لاله آنجا بود حتما با یه تک نانی دستمالی چیز اما بعد مصیبت جلو دکتر جماعت یک جف خاصی آدم رو میگیرد عقل آدم پس کلهش کار همان همانطور با دست پتی لبه سنگ دیزی رو گرفتم و توی کاسه کچ کردم سوختم پسر سوختم بخار آب و سنگ داغ شوخی بر نمی سوختم کم مانده بود از درد قیه بکشم. حتی وقتشو دیزی را به حالت اول برگردانم مجبوری روی تخت ولش کردم به امان خدا ترکمون زدم تمام پروپاچه لاله شد آبگوشت خالی روی خودم هم پاشید ولی در مقایسه با لباسای او مال من خیلی آبرودار دار بود. لاله دوتا دستش را مثل آدم هایی که تسلیم شده اند بالا برد که یک عکس عمل طبیعی است. نه اینکه همه آدم ها همین کار را بکنن منظورم این است که توی اینجور مواقع بالاخره هر کسی یک جست احمغانه ای مثلا من خودم دندان گروچه می کنم یا دست چپم را مشت می کنم. گفتم: عیبی نداره چیزی نیست بشوری گور بابای مال دنیا. این حرفها را لاله باید میزد نه من. با دو انگوش پاچه شلوارش را گرفت و از پایش فاصله داد. احتمال دادم پایش سوخته باشد. داد زدم گارسون! گارسون کمک. گارسون که نیومد هیچ ریشخند ملت هم شدیم. انگار گفته بودم گرگ آمد گرگ آمد. هر که ما رو میدید می به می خدا قسم اگر آنجا آن همه با کلاس نبود محال ممکن بود پیش خدمت های انترش را گارسن صدا کنم. داله گفت؟ لازم نیست. من خدا الان میرم تمیزش میکنم. میتوانست این جمله را خیلی مهربان بگویهد که از عذاب وجدانم کم شود. دسته تا دستمار کاغذی از روی تخت برداشت و جنگی رفت از شوی. دستشوی های زنانه را در سرتاسر سر جهان جوری تر کردند که اگر آقایا مایل باشند داخلش بشوند شر به پا وگرنه حتما دنبالش میرفتم که کمک حالش باشم. یادتان نرود که دیزی را من روی پای لاله چپه کرده بودم. تنها کاری که احساس کردم توی آن حال و آزا کمی می میدهد این بود که دیزی خودم را توی کاسرش بریزم. ریختم. این بار دیگر هیچ مشکلی پیش نیامد. داشتم نان هم براش تیرید می کردم که دو مرتبه گوشیاش لرزید. هربار هم که می لرزید کمی کم نیم متر جابجا جا می شد. پیامک داشت. کافی بود اراده کنم که توی گوشیش سرک نکشم. ولی اراده نکردم. چون مسئله حریم خصوصی همیشه جذبیت های مخصوص خودش را برای من داشته است. دو به شک بودم ولی متاسفانه در نهایت توجهی بهش نکردم. گوشی را باز کردم. چون از این تاشوها بود. پیامک از طرف یک بابایی آمده بود به اسم اتساین. روی اصلی که اسم هیچ خری در دنیا ادساین نیست، بدلم برات شد که باید پای رمز و رازی در میان باشد. متن پیام به این شهر بود. بازم تولدت مبارک بانوی زیبایی ها. فقط همین را نوشته بود. خب توقع دارید من از این یک جمله چی دستگیرم بشود؟ علم قیب که ندارم. این همه بانوی زیبایی ها توی این مملکت ریخته. چاره چه بود؟ از درد لاعلاجی یک نگاهی هم به پیامک قبلی انداختم ببینم آنجا هم همین بازیست یا نه؟ نوشته بود. امشب بعد از جلسه توی بهترین رستوران شهر. موافقی؟ حساب کردم این همانی بود که لاله بعد از خواندنش گفته بود خدا کنه من که به چشم عبرود نمی بینم. به کی به کی قسم اگر با خاندان یکی هم چیزی حالی شده بودم؟ محال بود سر وقت پیامک دیگری بروم. نوشته بود. مگه ندیدیم احناس چجوری نگاه می کرد؟ فکر کنم یه بوهایی برده بود. کلم سیخ شد سیخ سیخ حتی فکرش را هم نمیتوانید بکنید که کی بود منظورش از مهناز مهناز بود نامزد اسکندر جلدی شماره رست توی تلفن رو حفظ کردم و گوشی رو پرت کردم سر جاش نفسم راحت بالا پایین میرفت ولی یخ کرده بودم حقش نبود این كار را میکردم پاری وقتا این حریم خصوصی هم مثل کانون خانواده چیز لقی از آب در میآید به هم ریخته بودم که اگر میدیدید میگفتید عذای ننهام را گرفتم دلم میخواست به زمین و زمان تف کنم. حال قدری بد شده بود که در جا با خودم عهد کردم تا روزی که زندم توی گوشی هیچ بی غیرتی سرک نکشم اما جایی این اهد و پیمان های سرپایی آنجا نبود که زیر دنب خار خسک آمده بود که حالا که کار به اینجا کشیده ماجرا رو به یک سرجا برسانم از سر ناگوشی رو برداشتم و دنباله کار را گرفتم آن روز چیزهایی از توی آن موبایل کوفتی بیرون کشیدم که اگر ادامم هم بکنید محال است در موردش چیزی از من بشنوید حرفهایی با هم رد و بدل کرده بودند که گوش انسانیت سرخ میشد. با اینکه در شرایط معمولی آدم با غیرتی به حساب نمی آیم ولی آنجا احساس کردم که رگ غیرتم از داخل کمی جنبید باز اگر هر کی به جز اسکندر طرف حسابم بود میشد یک جوری با قضیه کنار آمد ولی وجود اسکندر بازی بازی مسئله را ناموسی کرده بود بیخود نبود که از روز اول از دیدن این یارو کهیر میزدم حال عجیبی بود. اگر تنها بودم و احتمال بالای 90 درصد گرگه میکردم. از همه اینها گذشته دیزی داشت از دهن می افتد. دوسته تا فوش آب نکشیده نصاره هرچی نابدتر اسکندر کردم و یک لغمه کله گربهی برای خودم گرفتم. اما مگر بغز امان میداد که لغمه از گلویم پایین برود. توف به این روزگار. از آن طرف رستوران سر و کلهی لاله پیدا شد. جورا را در آفرده بود ولی مانتو و شلوارش را فقط آب کشیده بود نسبت به موقعی که داشت میرفت خوشحالتر خوشحال تر به نظر می رسید حالا برعکس من توی آن ده دقیقه پیر شده بودم حتی اگر قرار بود من پول نهار را به صلفم من ممکن بود آن همه پکر بشوم وقتی روی تخت نشست کاسه آب گوشت را جلوش کشیدم و گفتم تو مشغول شو من الان برمی کجا؟ میرم یه برسونم منتظر بودی من بیام خوب میرفتی این همه وقت این یه مورد اضطراری لاله با اون چیزی که تو فکر میکنی زمین تا آسمون فرق میکنه باید منو درک کنی دوباره پا گیج شد ولی من باید میرفتم پس چه میگوید با خیال آسوده کنارش لم میدادم و های ته تقار را میکوبیدم حالا یا دستجوی یا هر جا باید میرفتم تا شمارهٔ نحس اتساین از مخم نپریده بود باید بهش زنگ میزدم از تیر لاله که دور شدم یکی از تختها ها توجه هم را جلب کرد که روش هفت هشت و دختر و پسر آنچنانی نشسته بودند. نامرت داشتن داشتن برگ و جوجه به نیش می در این غضیه یک دیزی. جلوتر رفتم و با صدای خسته گفتم سلام امیدوارم روز خوبی را رو سپری کرده باشین حقیقتش پدرم سه سال خورده که میگرن داره و از روز کبدی مزمن رنج میبره. من به تچه سریعتر برای جور کردن پول درمونش به اتاق عمل زنگ بزنم. میخوااستم ببینم میتونم از موبایلتون استفاده کنم راه دوری نمیره فقط جایی درز نکنه. به زرس قاطع میگویم هیچ کدامشان هیچی نفهمیدم ولی چون حرف آرتروز رو می وسط بود بی سه چهار تایشان از سر درسوزی موبایل‌هایشان رو را به سمت دراز کردند. مایکشان را گرفتم و شماره رو زدم. یک بوق، دو تا رفروی پیغامگیر با سلام در حال حاضر در جلسه هستم لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید متشکرم خودش بود حالا دیگر مطمئن شدم که خودش بود از اولش هم شک نداشتم که پای اسکندر بی پدر و ما در وسط ماجرا بود. اما حد اغل فایده ای که این تماس داشت این بود که تصمیمم را برای رفتن به توالت قطعی کرد.